احداث یک نیروگاه خورشیدی، سرمایه گذاری بسیار مطمئن است که موفقیت آن به چهار کلید اصلی بستگی دارد. یک و دو پژوهش و توسعه برای تضمین توجیه فنی و اقتصادی، سه فاز ای که شامل طراحی خرید تجهیزات، از ساخت است. چهار بهرهبرداری و نگهداری OEM که حدا که سرسازی تولید و طول عمر را شامل می شود. یکی از مهمترین عوامل انتخاب سایت مناسب با بیشترین تابش خورشید است هزینه احداث بسته به ظرفیت اما بازگشت سرمایه معمولا بین 4 تا 8 سال بوده و پس از آن برای بیش از 20 سال برای شما درآمدزایی خواهد داشت